پرسدن در داستان کربلا آیا واقعا معجر از سر اهل بیت کشیدن و اهل بیت بیهجاب بودن؟ نخیل کوفیان مسلمان بودن اینها رو نوضوالله خارجی میدونست خارجی یعنی خارج از دین یعنی کسانی که از دین خارج شدن ولی قیلت عرب حتی عرب جاهلی طوری بود که نوامیس رو حتک می کردن در ملع ولی به تو اون مصیبت هایی که بود آبدی نبود گاهی چیزی پس پیش می دیگه ولی